یک کچل ها داستان زیبا به قلم حمیدضا خذایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانه گوینده بانو حسن کچل و کوه بلند یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. حسن کچلی بود که با مادر پیرش زندگی میکرد. حسن هم کچل بود، هم زشت و هم تنبل. از بس تنبل و بیکاره بود، از در همسایه کسی جرعت نمیکرد بهش کاری بده. پیرزن ناراحت بود و کاری هم از دستش ساخته نبود. یه روز کارت به استخونش رسید. یه تیکه نون به حسن داد و از خونه بیرونش کرد و گفت تا کاری برا خودت پیدا نکردی به خونه بر نگرد. حسن ناراحت به راه افتاد. همینطور که میرم دید مردی سر کوچه ایستاده و داره به اطراف نگاه میکنه. مرد تا چشش به حسن افتاد گفت کجا میری؟ حسن گفت به دنبال کار. مرد گفت بیا و برا من کار کن. امروز چوبون نیمده و کسی نیست گلیه و به صحرا ببره. اگر گله رو به بیابون ببری و سالم برگردونی پنج سکه به تو میدم حسن کسل خوشحال گله گوسفند رو جلو این و به بیابون برد تو بیابون گله گوسفند رو رها کرد تا برای خودشون بچرن و خودشم تو سایه یه درخت نشست و بنا کرد به خوردن نونی که مادرش داده بود هنوز نو خوردنش تمام نشده بود که صدای عجیب و غریبی مثل آسمون قرنبه تو بیابون پیچید. حسن کچل که تا حالا همچین صدای نشنده بود نونو پرت کرد و از ترس به درخ چسبید. یه وقت دید که از بین دود و قبار دیوی بیرون اومد که قدش به آسمون میرسید. شاخهای بلندی داشت و چشاش مثل دو کاسه خون بود. وقتی را میرفت زمین زیر پاهاش میلرزید و دم و دم صدا میکرد. نزدیک حسن که رسید حسن کچل چیخ زد و گفت تو رو خدا با من کار نداشته باش من بچه یتیمم و باید برای مادر پیرم پول ببرم اگه پول نبرم منو تو خونه را نمیده اگه منو بخوری مادرم از قصد دق میکنه دیو گفت با تو کار ندارم به شرطی که یکی از گستنداتو که چاق و چلست به من بدی حسن یکی از گوسفندای چاق و رو گرفت و به دیو داد دیو گوسفند و تیکه تیکه کرد و خورد و وقتی میخواست بره به حسن گفت هر وقت با من کار داشتی به اون کوه بلند سنگی بزن حسن تا غروب گوسفندار رو چروند و غروب گله رو برگردوند صاحب گله گوسفندارو شمرد و دید یکیشون کمه گفت یکی کمه حسن گفت مواظب بودم نه گرگ اومد نه کسی به گله زد صاحب گله گفت تا گم گمشده رو نیاری از حقوق خبری نیست دو تا سیلی هم بهش زد و حسن رو از خونه بیرون کرد حسن که از خونه رونده و از کار مونده شده بود به راه افتاد شب شده بود نشست روی تخت سنگ و به فکر فرو رفت دو فکر و خیال بود که یاد دیو افتاد با خودش گفت شاید دیو بتونه برام کاری داشته باشه سنگی رو برداشت و به کوه بلند سر تا سنگ به کوه خورد کوه یه صدایی داد و یه سکه طلا از کوه پایین ریخت حسن جیباش و پر از سکه کرد و برگشت به خونه در زد مادرش اومد پشت در و گفت آه چیکار کردی؟ کاری پیدا کردی؟ حسن گفت آره پیدا کردم اونم چه کاری از حالا به بعد نونمون تو روغنه مادرش گفت دروغ میگی اگه کار پیدا کردی و پولی گرفتی پولت نشون بده حسن از درز در یکی از سکه های طلا رو نشون مادرش داد و مادر با خوشحالی در رو باز کرد حسن رفت تو خونه و سکه ها رو ریخت تو دامن مادرش پیرزم با خوشحالی سکه های طلا رو زیر رو کرد و گفت این همه سکه ی تلا از کجا آوردی؟ نکن خزانش آدوز دیدی حسن کچل همه چیزو برای مادرش تعریف کرد پیرزن گو باشا باشا چند تا کیسه بردارو بریم و بقیه سکه ها رو بیاریم دو نفری رفتن پای کو حسن کچل سنگی زد بکو و از کو کلی سکه طلا پایین ریخت حسن کچل و پیرزن سکه ها رو جمع کردن و تو کیسه ریختن کیسه ها رو کشون کشون خونه آوردن از اون روز به بعد زندگی حسن و مادرش خوب شد. هرچی میخواستن، میخریدن و زندگی راحت و آسودهی داشتن. و هر وقت پولشون تمام شد، حسن کچل دور از چشم مردم به پای کوه میرفت. سنگی به کوه میزد و سکه ها رو جمع میکرد.